دویم کتاب تقدیم می کند فراوانی مسیر درونی به سوی ثروت اثری از نویسنده پرفروش نیویورک تایمز نویسنده دکتر دیپاک چوپرا مترجم مهرناز نروزی ینده اولفصل شاه بهرامی انتشارات ذهنوی فراوانی مقدمه معرفی فراوانی و مسیر درونی، کتاب های زیادی در خصوص چگونگی کسب درآمد وجود دارد. اما این یکی به اعتقاد من با گشودن مسیر درونی به سوی فراوانی منحصر به فرده است. من میخواهم خواننده درک کند که فراوانی ساعتی از آگاهی است. آگاهی بیکران است و به همین دلیل مواهب بیشماری به همراه دارد. قیتی است باستانی در هند نهفته در قلب سیستم یوگا که در زندگی از جمله تحقق مادی یا ثروت صدق می کندند. یوگا واژع ای باشگو است و آنچه در پس معنای آن نهفته چشمدازی باش شگو تر است. در زبان سانسکریت کلمه یوگا به معنای پیوستن یا متحد شدن و کلمه انگلیسی یوگ از آن مشتق شده است. در حالی که یک تصویر گاری قرون وستایی را که توسط یوغ گاف کشیده می شود به ذهن می آورد، یوغا واقعیتی کاملا جدید را آشکار می کند. در این واقعیت جدید، بخش هایی که ما معمولا فکر می کنیم باید از هم جدا نگه داریم، با هم متحد می شوند. دو مورد از بزرگترین بخش هایی که ما از هم جدا نگه می داریم، دو است که هر یک از ما در آن زندگی می کنیم. یک دنیا بیرون آنجاست، دنیای فیزیکی اشیا و افراد دیگر، دیگری دنیای درون اینجاست، جایی که ذهن دائمان فعال است و افکار و احساسات را تولید می کند، هدف یوگا این است که این دو جهان را به هم نصدیک کند. اگر بتوانید این کار را انجام دهید خوشحال و موفق خواهید بود. یوگا برخواسته از فرهنگ باستانی ودایی است که قرنها زندگی هندی ها را هدایت کرده است و پول نیست از این قاعده مستستانی است، البته نه در حوزه منیت. آرتا به عنوان اولین دستاورد در زندگی تعیین شده است. آرتا در سانسکریت به معنای ثروت است. با پیروی از اصول یوگا زندگی را طوری که برایتان تان مقدر بوده پیش خواهید برد. زندگی سرشار از پایداری، فراوانی و شادی و در طول مسیر پور مورد نیاز جهت حمایت از این زندگی به سمت شما خواهد آمد. حال متوجه می چرا چشمنداز مسیر یوگا بسیار با شکوه است؟ در سطحی ژرفتر یوگا در مورد روشن شده است. اما در راستای اهداف این کتاب سرفا دستیابی به شادی و موفقیت کفایت می کند. هدف شایسته که یوگا میتواند بسیار سادهتر، سریعتر و بدون دردسرتر از آنچه تصور می کنید به آن دست یابد. با توجه به واقعیت های دوشبار، به ویژه در این زمانه آشفت بازار، بیشتر مردم در مورد وعده های این کتاب مخصوصاً پول خواهد آمد، تردید خواهند داشت. نظرسنجی ها نشان می دهند که پول نگرانی اصلی مردم در زندگی است. علا اینکه پول به صورت خود به خود تأمین می شود، مسترزم تقلا و تلاش است. برای زندگی باید پول داشته باشید. برای پیشرفت در زندگی به مقدار بیشتری پول نیاز دارید. با این حال حتی در ثروتمانترین اقتصاد های غربی طبقه داده های گردآوری شده توسط سازمان گداب تنها حدود یک سوام شرکت کنندگان در نظر سنجی میگویند که در حال پیشرفت در زندگی هستند. کلید رهایی از نگرانی های مالی این نیست که سختتر کار کنید، و برای مقابله با کشمکش روزانه تلاش کنید تا روزی که بتوانید بازنشسته شوید و با احساس امنیت استراحت کنید. زمان بازنشستگی که امروز حوالی 65 سالگیست هر روز بیشتر به تحویق می افتد. بسیاری از مردم حتی با چشمنداز مالی بسیار خوب پیشبینی می کنند که تا زمانی بین 70 تا 80 سالگی کار کنند. همچنین هیچ تزمینی وجود ندارد که بازنشستگی احساس امنیت و رفاه به همراه داشته باشد. سالمندی یک قمار در همه زمینه هاست. اما در درجه اول سلامتی و پول. اگر هر دو را داشته باشید به چیزی واقعا نادر دست خواهید یافت. فردایی پر رونق در حالی که بیشتر مردم امروز پر رونقی ندارند. پول خواهد آمد، روی کرده بسیار متفاوتی نسبت به موضوع کلی پول ارائه می دهد. ما به استحاله ای در آگاهی نیازمندیم و هیچ استحاله ای بزرگتر از تقابل جهان درونی و بیرونی نمی توان تصور کرد. بر اثر این استحاله، زندگی در مسیری پنهان جریان می آبد. مسیر بیرونی کار، امور مالی، خانواده، روابط، وضایف و خواسته ها بر شما حاکم نیست، از سوی دیگر، باورهای درونی، شرطی شدنهای دیرینه، نگرانی، حوص، سردرگمی، درگیری و سایر عناصر ناسازگار درونی بر شما حاکم نیست. هر جهان فقط نیمی از واقعیت است. اگر دو نیمه را جدا نگه دارید، نمی توانید کامل باشید. یا تحت تسلط شرایط بیرونی یا درگیری های درونی خود خواهید بود. تمام هدف یوگا مادامی که دو دنیای درون و بیرون را با هم متحد می کند، ایجاد تعامل بین آنها است که تنها در ساحت آگاهی اتفاق می افتد. شما فقط می توانید آنچرا که از آن آگاه هستید تغییر دهید. با آگاهی بیشتر می توانید مسیر پنهانی را بیابید که به شما نشان می دهد واقعا چه کسی هستید و در شرایطی که لایقان هستید زندگی کنید. پول خواهد آمد اما نه به دلیل نیاز شما یا به دلیل کارمای پول خوب و مشیت الهی بلکه با ساکن شدن در لحظه اکنون و آگاهی بیشتر است که به سراغ شما می آید بدون تلاش هر آنچه برای یک زندگی سعادتمند و شاد نیاز است برای شما فراهم می شود در ساحت آگاهی، شادی و موفقیت به همراه پولی که برای هر دو لازمه است، فراهم می شود. موافقم یوگا به ندرت به پول وابسته است. در غرب تنها یک شاخه از یوگا برای مردم شناخته شده است. حتی یوگا که نوعی تمرین فیزیکی است و با عنوان کلاس یوگا شناخته شده و از موجی از محبوبیت ناشناخته از گذشته برخوردار بوده است. من خودم آن را با اشتیاق فراوان انجام دادم ما در این صفحات به هاتا یوگا نمیپردازیم اما اگر آن را تمرین کرده باشید یا به آن توجه کرده باشید درک کرده اید که وضعیت های بدنی که در هاتا یوگا آموزش داده می شود برای ایجاد یک حالت متمرکز ذهن و جسم است و این آموزش ها با دیدگاه کلی یوگا که به دنبال متحد کردن بخش هایی است که ما فکر میکنیم باید از هم جدا نگه داریم، مطابقت دارد. درست است: به قول معروف پول خوشبختی نمی آورد ولی فقر میتواند برای شما بدبختی بیاورد. یک ساندانستن فقر با معنویت به نظر من اشتباه بزرگی است، زندگی با نیازهای ساده، جدا کردن خود از خواستهای دنیاوی و اختصاص بیشتر ساعات بیداری خود برای فعالیتهای معنوی دارای است. لیکن بسیاری از مردم شرقی یا غربی واقعاً چنین زندگی را انتخاب نمی کنند. اما فقر شما را از نظر جان ثروتمند نمی کند، چه فقر دافتربانه که از روی خلوص انتخاب شده باشد و چه فقر اجباری که نمی توانید از آن فرار کنید هدف واقعی زندگی برای همه یکسان است با جان بخشایشگر ارتباط برقرار کنید و اجازه دهید هر چیزی را که نیاز دارید فراهم کند آیا نیاز همان خواسته است؟ آیا یوگا همه ی آرزوهای شما را برآورده و شما را در ثروت قوته ور می کند؟ این سعادات اشتباه هست. یوگا شادی درونی را به ارمغان می آورد که تنها میعار واقعی موفقیت است وقتی در خیالات افراد می کنیم به آرزوی کامیابی از طریق پول را داریم، در حال تلاش برای جبران فقدان شادی و لذت هستیم. این کتاب تاری تنظیم شده است که قسمت اول به موضوع پول و ثروت میپردداد. بخش دوم تمام جنده های فراوانی را پوشش می دهد. ما از طریق یوگا چیزهایی را آگاهان استخراج می کنیمیم که بیش از همه برایمان ارزش دارند. عشق، شفقت، فقطت Cب، حقیقت، خلاقیت و رشد شخصی. هرچه بیشتر آگاه باشید، بهتر میتوانید به آن چیزها به وفور دسترسی داشته باشید. بخش ثوام به عمیق ترین سطح یوگا میپردازد. جایی که آگاهی سعادتمندانه از میدان امکانات بی نهایت سرچشم میگیرد. تمرکز این بخش بر روی سیستم چکرا هست. هفت سطحی که در آن آگاهی را میتوان به خوبی تنظیم و به طور کامل بیدار کرد. اگر یوگا بتواند اینجا و اکنون شادی به ارمغان بیاورد، آنچه نیاز دارید با آنچه می خواهید همسوم می شود. زیرا تمام وجود شما در همه کامل خواهد بود. بیایید با داشتن چنین چشمندازی کامل در ذهن و همه چیزهایی که باید به دست بیاوریم شروع کنیم. خوش باش که هر که راز داند، داند که خوشی خوشی کشاند، شیرین تو شکر تو با شاکر، شاکر هر دم شکر ستاند، مولانا